نیچه به طور زمانی می گفت انسان ها طبیعتا برای زندگی رضایت بخش به این عناصر نیاز دارند او یک جزء مهم را اضافه کرد اینکه برای دستیابی به رضایت خاطر حتما باید گاهی به شدت احساس بدبختی کرده باشیم لذت و ناخوشنودی چنان به هم وابسته اند که اگر کسی قصد حد اکثر بهره از لذت را داشته باشد ناگزیر است بیشترین مقدار ممکن از ناخوشنودی را بچشد انتخاب با شماست یا کمترین ناخوشی ممکن و به عبارت دیگر نداشتن درد و غم یا بیشترین ناخوشی ممکن به عنوان تاوان ها و شادیهای مفرد که تا امروز به ندرت کسی لذت آن را چشیده است اگر راه اول را انتخاب میکنید یعنی اگر میخواهید رنج های انسانی را کاهش دهید بسیار خوب باید همینطور توان شادمانی خود را هم کاهش دهید ارزا کننده ترین کارهای بشری هم فارغ از درد و رنج نیست خواستگاه های شدیدترین شادی های ما به طرز بدی به خواستگاه های شدیدترین درد های ما نزدیک هستند به زندگی بهترین و بارورترین انسان و ملت نگاه کنید و از خود بپرسید آیا درختی که می‌خواهد سرفراز و پاور باشد می با هوای بد و توفان ها روبرون نشود؟ آیا دشمنی های بیرونی مقاومت های خارجی تمام انواع نفرت، حسد، لجاجت، بدگمانی، سرسختی، هر و خشونت؟ جس موارد مساعدی نیستند که بدون آنها هیچ چیز حتی تقوا و فضیلت هم نمیتواند چندان رشد کند بخش نهم چرا زیرا هیچ کس نمیتواند بدون تجربه اثر هنری بزرگی بیافریند و نمیتواند بیدرنگ در این دنیا به جایی برسد و نمیتواند در اولین کوشش عاشق بزرگی باشد در فاصله میان شکست اولیه و موفقیت های بعدی، در شکاف میان کسی که میخواهیم باشیم و کسی که در حال حاضر هستیم، حتما درد استراب حسد و تغییر وجود دارد. ما رنج میکشیم، زیرا نمیتوانیم معلفه های رضایت خاطر را به طور خود جوش کسب کنیم. نیچه سعی میکرد این عقیده را تسی کند که رضایت خاطر یا باید به آسانی حاصل شود یا اصلاً حاصل نشود. این عقیده آثار ویرانگری دارد، زیرا سبب می شود به طور نابهنگام از چالش هایی که می توانیم بر آنها غلبه کنیم کنار بکشیم. البته فقط در صورتی می توانیم بر این چالش ها قلب کنیم که خود را برای دشواری های آماده کرده باشیم که به حق لازمه تقریبا تمام چیزهای ارزشمند هستند. شاید تصور کنیم مقالات منتنی به طرز کامل شکر گرفته ای از فکر او بیرون آمده است. و خامدستی اولین تلاشهای ما در نگارش فلسفه زندگی نشانه عدم قابلیت مادرزادی ما برای این کار است به جای این باید به شواهد و مدارکی توجه کنیم که نشان می دهد منتنی برای آفرینش شاهکار نهایی خود چقدر زحمت کشید و چقدر مقالات را بازبینی و حک و اصلاح کرد نوشتن سرخ و سیاه، زندگی آنری برولار و در باب عشق آسانتر نبوده است استندال حرفه هنری خود را با نگارش چند نمایش نامی ضعیف شروع کرده بود یکی درباره ورود ارتشی مهاجر به کیبرون شخصیتها شامل ویلیام پیت و چارلز جیمز فاکس دیگری درباره به قدرت رسیدن ناپل اون و سومی که موقتا مردی که آفریده شده بود تا فرماندار باشد نام داشت شرح دوران کووللت یک پیرمرد استندال هفته ها در کتابخانه ملی به استنساخ تعاریف فرهنگنامه ای کلماتی مثل شوخی، مزهک و خنددار پرداخته بود ولی این کار برای تغییر شکل شیوه کسالتبار حسالتبار نمایش نام نویسیش کافی نبود دههها زحمت لازم بود تا شاه کارهایش را بیافریند اگر اکثر آثار ادبی به خوبی سرخ و سیاه نبودند به این دلیل نبود که به قول نیچه نویسندگانشان نبوغ نداشتند بلکه به این دلیل بود که از مقدار درد لازم تصور نادرستی داشتند نگارش یک رمان به این میزان تلاش احتیاج داشت بیان دستورالعمل برای پرورش رمان نویس خوب آسان است ولی به کار بستن آن مستلزم ویژگی هایی است که فردی که میگوید من استعداد کافی ندارم عادت کرده از آنها غفلت کند فقط لازم است حدود 100 تر برای یک رمان بنویسیم. ترهای کمتر از دو صفحه ولی محوب بین امتیاز که تمام کلمات آنها ضروری است. باید هر روز داستان بنویسیم تا یاد بگیریم چگونه بارورترین و مؤثرترین شکل ارائه را پیدا کنیم. باید در جماوری و توصیف تیپ و شخصیت های انسانی خستگی ناپذیر باشیم. بیش از هر چیز باید برای دیگران روایت کنیم و به روایت دیگران گوش کنیم. چشم و گوش خود را تیز کنیم تا ببینیم روایت ما چه تأثیری بر حاضران می‌گذارد. باید مثل نقاش منظره یا طراح لباس مسافرت کنیم. سرانجام باید در باب های اعمال انسان تأمل کنیم. از هیچ نشانه‌ای برای یادگیری چیزی درباره آنها قافل نشویم و روز و شب این نشانه‌ها را جمع‌آوری کنیم. باید حدود ده سال به این فعالیت چند جانبه ادامه دهیم. از آن پس چیزی که در کارگاه آفریده می شود مناسب عرضه به جهان خواهد بود. فلسفه ترکیب شگفت است. از ایمان شدید به توان بشری رضایت خاطر در دسترس همه ما هست درست مثل نگارش رومان های بزرگ و پایداری شدید شاید لازم باشد یک دهه مصیبت بار را صرف نگارش کتاب اول کنیم. نیچه میخواست ما را به حقانیت درد عادت دهد. به همین علت آن همه وقت را به صحبت درباره کوه ها اختصاص داد. بخش دهم. به سختی می‌توان چند صفحه از آثار نیچه خواند و اشارهای به کوهستان ندید. در کتاب آنک انسان میگوید آن کس که میداند چگونه هوای نوشته های مرا تنفس کند میداند که این هوا هوای ارتفاعات است هوای سالم باید برای آن آمادگی داشت در غیر این صورت خطر سرماخوردگی خطر کوچکی نخواهد بود یخ نزدیک است تنهایی دهشتناک است اما با چه آرامشی همه چیز در زیر نور قرار دارد انسان چه آزادانه نفس میکشد تا چه آز زیر پای خود را حس میکند. فلسفه تا آنجا که من آن را درک کرده و زیستم زیستن اجباری در یخ و کوههای بلند است در کتاب تبارشناسی اخلاق میگوید گوید چون این هدفی را جانهایی از گونه های دیگر می جانهایی جز آنچه در روزگار کنونی به چشمی آید خوکرده به هوای تیز بلندا به گشت و گذارهای زمستانی به یخ و کوهستان به هر معنا در کتاب انسانی بس بسیار انسانی میگوید در کوههای حقیقت هرگز بیهود صعود نخواهید کرد یا امروز بالاتر خواهی رفت یا توان خود را به کار خواهی گرفت تا به توانی فردا بالاتر روی در کتاب تعملات نابهنگام می گوید من به هوای سرد و پاک کوهستان سعود کرده تا بالاترین ارتفاعی که تا کنون فیلسوفی توانسته تا جایی که تمام تیرگی و قبار از میان می و سرشت اصیل چیزها با صدای زمخت و خشن ولی به طرز وصف ناپذیری قابل درک سخن هم در عمل و هم در نظر اهل کوهستان بود. نیچه در آوریل 1869 تابعیت سوئیسی را پذیرفته بود. او را میتوان مشهورترین فیلسوف سوئیس دانست. با این حال گاهی مقهور احساسی میشد که فقط معدودی از سوئیسی ها به آن ناآشنا هستند. یک سال پس از اخذ تابعیت سوئیسی به مادرش چنین نوشت: از سوئیسی بودن دلتنگم پس از استعفا از مقام خود در دانشگاه بال در سی پنج سالگی ها را در کنار مدیترانه عمدتا در جنوا و نیس و تابستانها را در آلپ در دهکده کوچک سیلز ماریا 1800 متر بالاتر از سطح دریا در ناحیه انگادین واقع در جنوب شرقی سوئیس چند کیلومتر دورتر از سنموریتز گذرند. جایی که بادهای ایتالیا با تندبادهای خنکتر شمالی برخورد می‌کنند و آسمان را به رنگ آبی کبود درمی آورند اولین بار نیچه در جوان 1879 از انگادین بازدید کرد و بیدرنگ عاشق آب و هوا و موقعیت طبیعی آن شد او به پلره گفت اکنون بهترین و سالمترین هوای اروپا را تنفس می کنم طبیعت اینجا همسنخ من است به پترگاست چنین نوشت اینجا نسوییست بلکه چیزی کاملا متفاوت حداقل بسیار جنوبی تر است. برای یافتن محلی شبیه اینجا مجبور بودم به فلات مرتفع مکزیکو مشرف بر اقیانوس آرام بروم. برای مثال او آخاکا. و البته پوشش گیاهی آنجا هار است. خب باید سعی کنم این سیلزماریا را برای خودم نگه دارم. و به دوست قدیمی دوران مدرسه کارل فون گرستورف گفت احساس می کنم که اینجا و نه هیچ جای دیگر خانه واقعی و زادگاه من است. نیچه هفت تابستان را در سیلز ماریا در اتاقی اجاره در کلبه مشرف به درختان کاج و کوه سپری کرد. در آنجا تمام یا بخش های عمده حکمت شادان چون این گفت زرطوشت فراسوی خیر و شر، تبارشناسی اخلاق و شامگاه بوتان را نوشت. او پنج صبح از خواب بر و تا ظهر کار می‌کرد. سپس از قله که این دهکده را مثل گردنبند احاطه کرده بودند بالا می‌رفت. قله‌های قله های پیز پیز لاگرف، دولا مارگنا، ناهموار و بکری که انگار همان زمان تحت فشارهای تکتونیک یا زمین ساختی شدید از پوسته زمین بیرون آمده بودند. شبها تنها در اتاقش، چند ورق ژامبون، یک تخم مرغ و یک نان ساندویچی می‌خورد و زود می‌خوابید. چگونه می‌توان متفکر شد اگر حداقل یک سوم روز را دور از هیجانات مردم و کتاب‌ها سپری نکرد؟ امروز موزه در این دهکده وجود دارد. با چند فرانک می‌توان از اتاق خواب نیچه بازدید کرد. اتاق خوابی که مطابق توضیح دفترچه راهنما مثل زمان نیچه با همان بی پیرایگی مرمت شده است. با وجود این برای آنکه دریابیم چرا در آنجا نیچه احساس می کرد چونان پیوندی میان فلسفهش و کوها وجود دارد. بهترین کاری این است که اتاق را رها کنیم و در عوض به یکی از چندین فروشگاه لوازم ورزشی سیلزماریا برویم. تا پوتین های پیاده روی، کول پشتی، بطری آب، دستکش، کش، نما و کلنگ بخریم. بالا رفتن از پیکرواچ چند کیلومتر دورتر از خانه نیچه، بهتر از هر موزه دیگری روح فلسفه او دفاعش از سختی و دشواری و دلایل او برای روگردانی از کمروی گوزن مانند شپنهاوری را توضیح خواهد داد. در پای کوه میتوان یک پارکینگ بزرگ ماشین ردیفی از زباله های باز یافتی انباری برای گاری دستی های حمل آشغال و رستورانی یافت که سوسیس های چرب و راستی عرضه می کنند. قله کوه برعکس شکوهمند است. از آنجا میتوان تمام انگادین را مشاهده کرد. دریاچه های فیروزهای رنگ سگل، سیلوا پلانا و سنموریتس و در جنوب نزدیک مرز ایتالیا یخچال های عظیم سلا و روزک. سکونی غیرعادی در هوا وجود دارد. به نظر میرسد میتوان سقف دنیا را لمس کرد. ارتفاع ما را از نفس می اندازد ولی در کمال شگفتی به ما سرور هم می‌بخشد. به سختی می‌توانیم جلوی لبخند زدن و شاید خندیدن خود را بگیریم. خنده‌ای بی‌دلیل و معصومانه‌ای که از اعماق وجودمان برمیخیزد و حاکی از شادی اصلی است. شادی از اینکه زنده ایم و این زیبایی را نظاره می‌کنیم. ولی سعود به ارتفاع 3451 متری برای درک نکات آموزنده فلسفه کوهستان نیچه کار آسانی نیست این کار حداقل به پنج ساعت وقت نیاز دارد باید از مسیرهای شیبدار بالا برویم از راهی اطراف تخت سنگها و از درون جنگلهای انبوه کاج عبور کنیم در هوای رقیق از نفس بیفتیم چندین لباس اضافی بپوشیم تا با باد مبارزه کنیم و در برف تمام نشدنی دندان قروچه کنیم بخش یازدهم. نیچه استعاره کوهستانی دیگری هم بیان کرد چند قدم دورتر از اتاق او در سیلز ماریا راهی وجود دارد که به دره فکس منتهی می شود یکی از حاصل نواحی نواهی انگادین در شیبهای ملایم آن کشت و زرع زیادی انجام می شود. در تابستان گله های گاو فکوران علف سبز مقوی کما بیش درخشند را می و هرگاه از کرتی به کرت دیگر می روند زنگوله هایشان به صدا در می مراطع در اون نهرهای آب با صدای آب گازداری که در لیوان ریخته می شود جاری هستند. در کنار تعداد زیادی از مزارع پاکیزه یکوچک که بر فراز هر یک، پرچم ملی سوئیس و پرچم این ایالت برافراشته است جالیزهایی وجود دارد که به خوبی به آنها رسیدگی می کنند و از خاک خاکبرگانها، بله کلم، در قرمز، هویج و کاهوهای بسیار خوبی می روید که آدم را وسوسه می کند. زانو بزند و مثل خرگوش به آنها گاز بزند. اگر اینجا چنین این کاهوهای خوبی وجود دارد به این علت است که در فکس سرد و یخچالی است و وقتی پوشش یخی کنار می رود، خاکی ظاهر می شود که از مواد معدنی غنی است. در امتداد این دره بسیار جلوتر و پس از ساعتها پیاده روی توانفرسا درون مزارع مرتب و منظم به خود یخچال می‌رسیم. عظیم و هولناک. شبیه رومیزی است که باید آن را بکشیم تا چین هایش صاف شود. ولی این چین ها به اندازه یک خانه هستند و از یخی به تیزی تیغ ساخته شده‌اند و گاه و بیگاه هنگامی که خود را در آفتاب تابستان جابجا به جا می‌کنند فریادهای سوزناکی می کشند وقتی کنار این یخچال سنگ دلیستاده این به سختی میتوانیم دریابیم که چگونه این توده انبوه منجمد میتواند نقشی در پرورش سبزی ها و علفهای سرسبزی داشته باشد که فقط چند کیلومتر دورتر در امتداد دره وجود دارند. تصور این امر دشوار است که چیزی مثل یخچال که ظاهرا این همه نقطه مقابل مرتع سرسبز است. بتواند با اس و بانی حاصل خیزی مرتبه باشد نیچه که اغلب با در دست داشتن مداد و دفتر یادداشتی جل چرمی در دره فکس قدم میزد، با اعتقاد به این نکته که فقط افکاری که در هنگام قدم زدن به ذهن خطور میکند با ارزش هستند وابستگی عناصر مثبت زندگی بشری به عناصر منفی را با وابستگی رضایت خاطر به سختی ها مقایسه میکند. وقتی این دره های کم عمق پرچین و چروکی را می بینیم که یخچال ها در آنها آرمیده اند، فکر می‌کنیم ممکن نیست زمانی فرارست که در ری پر و درختی که نهرها آبیاریش می در همان محل به وجود آید. در تاریخ بشر نیز همین گونه است. وحشی ترین نیروها راه را صاف می کنند و عمدتا ویرانگرند. ولی با وجود این، کاران ها ضروری است تا بعدها تمدن بهتری در آنجا بنا شود. نیروهای هولناک که شر خانده میشوند معماران و جاده صافکان های قول پیکره بشریت هستند. بخش دوازده هم. ولی سختی های هولناک مسلمن انقدرها هم اندوهناک نیستند. همه زندگی ها سخت هستند، آنچه برخی از آنها را رضایت بخش هم میکند. شیوه برخورد با درد ها و رنج است. هر دردی به طور هم نشان می‌دهد که چیزی اشتباه است. این درد ممکن است بسته به فرزانگی و قدرت ذهنی فرد مبتلا نتیجه خوب یا بدی داشته باشد. استراب ممکن است ترس را تشدید کند یا منجر به تحلیل درستی از چیزی شود که نادرست است. احساس بیادالتی ممکن است به قتل بیانجامد یا به نوعی نظریه اقتصادی راهگشا حسد ممکن است به تلخ کامی بیانجامد یا منجر به رقابت با رقیب و خلق شاهکاری شود. همانطور که متفکر محبوب نیچه مونتنی در فصل آخر مقالات گفته است، هنر زندگی یعنی یافتن راههایی برای استفاده از های خودمان. باید یاد بگیریم از امور ناپذی رنج نکشیم. زندگی ما مثل هارمونی جهان. مرکب از ناهمه و الهان متفاوت، زیر و بم، آرام و گوشخراش خراش، کوتاه و بلند است. اگر موسیقیدانی فقط برخی از آنها را دوست داشته باشد، چه می تواند او باید بداند چگونه از همه آنها استفاده و آنها را با هم ترکیب کند. ما نیز باید در سلوک با خوب و بد همین طور باشیم. خوب و بدی که جوهر آنها با جوهر زندگی ما یکیست. و حدود سیصد سال بعد نیچه به این فکر بازگشت. اگر زمین های حاصل خیزی بودیم، ذاتن نمیگذاشتیم هیچ چیزی بی استفاده از بین برود و در هر رویدادی چیزی می دیدیم و از کود استقبال می کردیم. در این صورت چگونه می توان حاصل خیز بود؟ بخش 13 رافائل در سال 1483 در اوربینو به دنیا آمد. از دوران کودکی چنان علاقه به نقاشی نشان می‌داد که پدرش او را به پروجا برد تا به عنوان شاگرد نقاش مشهور پیترو پروجینو کار کند. به زودی آثار خودش را نقاشی کرد و در اواخر دومین دهه زندگیش چندین پرتره از درباریان اوربینو و چندین کتیبه محراب برای کلیسه های سیتا دی کشیده بود، شهری که از اوربینو یک روز فاصله داشت و در امتداد ها در جاده پروچا واقع بود. ولی رافائل یکی از نقاشان محبوب نیچه میدانست که هنوز هنرمند بزرگی نیست، زیرا آثار دو نفر، میکرانجلو، باناراتی و لئوناردو دوینچی را دیده آنها به او نشان داده بودند که نمیتواند چهره های متحرک را بکشد و به رغم استعدادش در زمینه هندسه تصویری هیچ درکی از پرسپکتیو خطی ندارد این حسادت ممکن بود فجیع و هلناک شود ولی رافائل آن را به کود تبدیل کرد در سال 1504 در 21 سالگی اوربینو را به قصد فلورانس ترک کرد تا کار دو استادش را مطالعه کند او های آنها را که در تالار شورای بزرگ شهر بود بررسی کرد یعنی جایی که لئوناردو نبرد آنگیاری و میکلانجلو نبرد کاشینارا کشیده بودند او از های لئوناردو و درسهای درس‌های شناسی را فرا گرفت و ها در امر تشریح و ترسیم بدن ها پیروی کرد رافائل از ستایش مجوسان لئوناردو و های او از مریم مقدس و عیسی مسیح نکته‌ها و پورتری غیرعادی لبخند جوکاند را به دقت بررسی کرد نجیبزادهی به نام فرانچسکو دل جوکاند از لئوناردو خواسته بود پورتری شبیه همسرش زن زیبای جوانی با لبخندی معماگونه بکشد. تلاش های رافائل به زودی نتیجه داد میتوانیم پورتری از یک زن جوان را که رافائل پیش از سفر به فلورانس کشیده بود با پورتری یک زن که چند سال بعد کامل شد مقایسه کنیم رافائل از مونا ایده نشستن نیمقدر را گرفت که در آن بازوها قاعدهای ترکیب بندی هرمی شکری را تشکیل می دهند. او به رافائل آموخته بود که چگونه از محورهای مخالف برای سر، شانه و دست ها استفاده کند تا به چهره حجم دهد. زنی که در اوربینو ترسیم شده به طرز عجیبی در لباسهایش مقید و ناراحت است و بازوهایش به طور غیر طبیعی قطع شده ولی زن فلورانسی پرتهر و راحت است. رافائل به طور خودجوش این استعدادها را کسب نکرده بود. او استاد شده بود. زیرا واکنش هوشمندانهای به احساس هغارت نشان داده بود. احساسی که میتواند افراد کوچکتر را دچار ناامیدی کند. نیچه از این مسیر هرفهی درباره منافع تفسیر خردمندانه درد درسی گرفت. از استعدادهای مادرزادی و مستعد بودن سخن نگویید میتوان همه نوع انسانهای بزرگی را نام برد که چندان مستعد نبودند آنها عظمت را کسب کردند از طریق ویژگیهایی نابغه شدند که هیچ انسانی دوست ندارد از آنها سخن بگوید هرچند از فقدان آنها آگاه باشد همه آنها جدیت سخت کوشانه صنعتگران را داشتند یاد گرفته بودند که اول اجزا را درست بسازند قبل از آنکه جرأت کنند کلی بزرگ را بسازند آنها برای این کار وقت صرف می کردند زیرا از اینکه چیزهای سانویه کوچک را خوب بسازند بیش از آفرینش کلی خیره کننده لذت می بردند. رافائل توانسته بود اگر بخواهیم واجه های نیچه را به کار ببریم سختی های راه را تسعید کند روحانی سازد و متعالی گرداند و بار ور